صحبت این جلسه و این پیادوگمون در واقع صدق هست مثل صدق راستی، راستگوی، داریم. یک زمینه ای رو من عرض میخونم که من اساس اون صحبت خب این واضحه که صدق به عنوان یک ارزش اخلاقی و یک ارزش انسانی شاید تنها ارزشی باشه که از آغاز تاریخ بشر تا اونجا که تاریخ بیاد داره تا به امروز تنها ارزش و معنایی هست که تمام مذاهب و فرهنگ ها بران اعتراف دارن بر حقانیتش شاید بلکه حتماً میشه گفت اگر یک ارزش و معنا باشه که همه مذاهب ملل و فرهنگ ها و اقوام بشری در حقانیتش و دلستیش اعتراف دارند و اون بلا قرار میدن صدق و راستی هست خود همین خوب خیلی معنا داره یک معناش رو در روش رسالت انبیا الهی میبینیم این رو میدانیم که نخستین ارزشی که همه انبیا انبیاء برایم تاکید کردن صدق بود باشه. رو در وقتی به صدق کردن این در واقعه کلیه واحدی هست که برای کل بشریت گذاشتن این هم از بلاست انبیاء الهی است دین هست خب ما میدونیم که ازجسر در قرآن واضحه شاید هیچ واجعی نیست که و مثلا در قرآن بخوا نراسته در سخنان ائمه هم ما خیلی میشناسیم مخصوصا از حضرت علی علیه ایسلام در مورد سیر بسیار کلام داریم یک سخن ما پیش نیست که سیر طرا دین است یک جایی فرمود که سیر اساس دین است بازدارمی سرق مبدع و معاد دین است هنوز کسی گروهی پر فرقی پیدا نشده تا به امروز را آغن. که بگه نخه راستی بد است سرق بد است تمام عردش ها را مخصوصا بشر متمدن که بسا به زبان آشکار نفع کرده به لجنکشی در دشای دینی رو این تنها ارزشی که هیچ کافری هم هنوز تا به امروز رحمت من را که بگه سرق بد است و به خودش افتخار کنه این خودش خیلی معنی میده و اهمیت این مسئله در همین کلیات واضح است اگر بخوامیم تعریف کلی از رای بدیم که تریف ایدولوژیکی و مذهبی هم نباشه که عرد پسند و بشر پسند باشه میتونیم بگیم که صد و مفهوم راستی این واقعیته و هر نوامید من انسان صادق انسانیه که واقعیت رو امکار نمیکنه، کنه انسانیست واقعی در واقع انسان صادق انسانیست واقعی انسانی رالیستی که بر واقعیت زندگی میکنه و واقعیت رو تایید میکنه، تکذیب نمیکنه. خب اگر بگیم که بخوام یه یک تریفی مثلا فلسفی تر اساسی تر از و که بدیم اینه که بس بگیم آیا اساس راستود روخ هست حساس راست دروغ واقع و غیر واقع هست پس میشه گفتش که دروغترین دروق ها همان عدم است. نیستی است. چرا پر اینکه نیستی نیستی نداره پس نیستی دروغ است. این رو من فکر میکنم هر عقل و صدق برکسش میشه واقعیت اینه صدقه پس صادق ترین امور واقعیترین امور و اجناک ناپی ترین امور ترین و موجودترین امور در واقع بایصد و کفر مترادف متادف هممن هستی و نیستی قرار بیم وجود و عدم نفیم محنم این رو همه فرهنگ و فکر این تریف رو میتونن قبول داشته باشند آن راست است آنچه نیست دروغ است خوب. <تصفيق> خب حالا بخوام برگردیم به تاریخ دینی که واضحی که صدق واقعا گردش دینی است دیگردش مسئلی است در این طریق دینی است صادق ترین انسان ها خدا ترین و خدا ترین انسان هستند در عمل در عمل مسلم <تصفيق> انسان به میزانی که وجدان داره و معرفت داره صادقه لابلین انسان صادق اگر بگیم انسان واقعگره است، پس انسان معرفتگره است چرا؟ برای که انسان به میزان معرفتش واقعیت ها و موجودیت ها رو تشخیص میده و فرق بین هست و نیست رو تشخیص میده درجات هستی و درجات نیستی رو تشخیص میده پس رضا به هم میزان میتونه صادق باشه باید صرف که بر معرفت، معرفت بر واقعیت معرفت بر هستی پس صرف میبینیم یک هستی شناسی و همچنین عدم شناسی راست شناسی و دروح شناسی عین وجود شناسی و عدم شناسی جذبه می کنی. در بیان دینیش ما خب می دونیم که در خود قرآن کریم صادق از اصمای خداست خدا صادق است و باز طبق معارف اسلامی خوب خداوند در هیچ صفتی شریک نداره وقتی میگه خدا شریک نداره یعنی توحید یعنی در هیچ صفتی شریک نداره به نبایین صادق فقط خداست یعنی این و انسان ها هم در قبال صدق خدا در درجاتی از کذب و دروغ قرار دارد این افضال دینی به انسان به میزان به خداست و به او نزدیک می شود و تسلیم اراده اوست به هم می دان صادق می باشد بقیه استفاده هم می این, این جنبه دیگری از مسئله هست به یکی از نخستین مذاهب توحیدی صاحب کتاب و حکمت خب ما قبلا اشاره کردیم که دین زرتشت بوده ما در دین ازرستوشت اون شعار استقانه پندار نیک گفتار نیک کردار نیک رو خبرمه میدونیم ما در بیان حکمت ازرستوشتی که در مذهب مانی و مذک واضح شد ما دیدیم که در آنجا این نیکی عین صدق و راستی است برای هم بود که دین مانی رو میگم دین راست دینی بوده راستینی این دین راستی دین صدق و میدونیم که یکی از دفترین گناهان کبیره در حکمت مانوی دروغی بوده اونها کبیر در صنم همینطوره طور امور فساد دروغ رو پیغمبر اسلام می‌فرماید امور فساد امور کافر در قرآن یعنی کذاب کذاب یعنی کسی که واقعیت انکار می‌کنه کافر این یعنی موجب کننده انکار کننده واقعیت قوم خب نوآوری می‌بینیم این سه کلام از زرتوش در واقعمش رو سجد وز جایگاه و منشأ حیات از انسانه انداری نیست گفتار نیک و اعمال و کردار نیک و من این رو نگاه کردن دیدم که انگار این سرکن رکن کم واقعا یک رکن دیگه داره که چهار رکن دین کامل بشه از احساس نیک هم باید صحبت کرد بر وزن قافیهیی پندار نی گفتار نی کردار نیک میشه دوستدار نیک را هم اضافه کرد دوستی براینه جاش در قلب براساس اساس معرفت قرآنی از اونجای که همین چیز از قلبه هر نیکی از قلبه بنابراین باید گفتش که دوستی دوست داشتن نیکی و قلب نیک و احساس و عواطف نیک منش سایره می خیاس دیگه چه واسه و در میشه گفت در انسان صدق چار منشا و جایگاه و محل ظهور داره صدق در قلب، صدق اندیشه، صدق زبان و صدق عمل یعنی صدق آتفی، صدق فکری، صدق زبانی، گویشی و صدق رفتاری. این چهار منشه از صدق میشه ازش صحبت کرد. خب در اینجا یه ترهی کلی از مسئله رو ما آرائه دادیم. ناشمان صحبت یکی سوالی، مسئله روی بسرده. خیلی مشرکنم از توضیح روتتون. شما به صحبتی که کردین صدق به همون واقعیت دید خب پس باید برای این که به این تعریف که شما فهم بودیم و تر بکنیم من این سؤال رو مصرح می که واقعیت خودش چی ببینید تلاش بشر کلا در طول تاریخ همیشه این بوده که صادق داشت وقتی صحبت از واقعیت میکنیم و در مقابلش صحبت از حقیقت میکنیم واقعیت به نظر اون امور و یا مسائلی میاد که بشر به واسطه حواس پنجگانش میتونه به اونها چا کنه از طریق پنج گانش دریافت کنه من واقعیت محسوس واقعیت محسوس بعد، مثلا من به میزانی که مثلا یه خودکار رو دمس میکنم میبینم و بعد حواظ پنجوانم میتونم بفهمم که این واقعیست خب پس واقعیتی که برای بشر قابل دسترسی واقعیت هست که اصطور حواظ پنجوانه شده است پس مسئله مثل خدا و مسائلی متافیزیکی از اون دست و واقعیت نیست آنچون که بشر رو در کل تاریخ به سمت مکاتبی مثل ماسرالیسم و کلا نهایتا به انکار خدا رسید فقط تلاش بشر برای این بود که میخواد صادق باشه. صادت صدق یعنی نهایتا بشر چرا دست از خدا و تمام متافیزیک برداشت چون احساس کرد که اونها اوهامه حداقل از, از طریق حواس پنجگانش نتونست اونها رو تصدیق بکنه چون واقعی نبودند اها. از یک سو شما صداقت رو واقعیت میدونید و از سوی دیگه صحبت از خداوت میکنید و هستی و نیستی و اینکه خدا من صادق ترین پس ت... اگر ما واقعیت رو دریافت واقعیت رو برای بشر همون حواس پنجگانش بدونیم خدا غیر واقعی ترین چیزی است که در جهان هستی وجود داره پس حداقل برای باشه خدا واقعیت نداره پس خدا دروغه خدا در واقعاً گفت خدا با وجود خدا منشای اشد دروغاست رضا در می‌گیره بله سوال برید اومدید گفتید هستی و نیستی ادم و و اینها رو مطرح کردید و بعد صحبت از واقعیت کردید در بشر نتونست خدا رو در جهان ماده خودش و با حواس پنجگانه خودش واقعیت ببخشه خیلی تلاش کرد شاید واقعا خیلی سخت تونست از خدا برداره ولی واقعا دید که اگر بخواد صادق باشه بهتری که این کارو بکنه و سقبر میشه گفت که بعد از قرون بستا و اون تراژدی که در قرون بستا شاهد بودیم واقعا خواست خودش یکسره کنه و دست از خدا برداشت و تمام آنچه که ما اگر رشد در واقعیت خا میدونیم واقعیت ها به عنوان رشد در ماده رشد در زندگی واقعی بشر امکانات واقعی بشر که در ق 2020 حاصل شد. فقط به خاطر بود که بشر دست از خدا به عنوان یک موجود غیر واقعی برداشت. و تصمیم گرفت که فقط بر واقعیتها زندگی بکنه یعنی صادقان زندگی بکنه پس از جهتی موقعا انکار خدا حاصل صداقت بشر بود بله میشه باید باید. بله. بله حاصل صداقت بشر حاصل این بود که دیگه نخواست خودش رو بفریده و به چیزهایی که نمی و حداقل واقعیتش مرموس نیست دل ببنده و خودش رو فریب بده چون قرنها بود که چنین کرد پس خواهش میکنم پس با این حساب یک تضاد یا تناقضی در گفته شماست از سوی صدق همون واقعیت و سوی در همون گامه خدا دروغ میشه و شما یه طرف صداقت رو راه دین دونستید و همچون که میگفتید اولین پیامو که تمام پیام دادن این بوده که صادق باشید ولی انگار در همون گام اول این خداست که این کار میشه من سالا مشخص می کنم. اول اینکه شما واقعیت رو توضیح بدید. آیا واقعیت همین تعریفی است که در این چنگار گفته شده که نهایتا فقط به ماده پرستی و به ماتریالیسم منجر شد آیا واقعیت فقط همینه؟ اگر ما واقعیت رو همون دریافت حواس پنجگانه خودمون بدونیم و بدونیم این باق... واقعیت یعنی این ناشار که خود را این کار بکنیم. مگر اینکه یعنی واقعیت رو بگونید که تعریف بکنیم. و همین سری که نهایتا. آنچه که بعد به این وضعیتی که الان رسونده که نهایتاً خدا رو کاملاً کنار گذاشته و گویی راحترم داره زندگی میکنه و در دیارست اینکه که ها افراد رو با هم داره داره همین احساس مپنند اونهایی که حدیقت امورات متافیزیکی رو کنار گذاشتن و فقط بر همون چیزی که میبینند دمت میکنند و صنده میکنند گویی راحتترم این روی توضیحاتی خوشمون این مورد بگ ولی دقیقا هم دوره به هم با دو دوتا تحریفی که کردم خواستم این تضاد رو نشون بدم که چندی چدی فهم صدق فهم این قدر متضاد و حیرت و جادوی هست و در اینها حال صدق این که از بزرگ داریم من عمدن دوتا رو اراهه کردم تا ما اساسی تر به این مثلا نگاه کنیم و که ما میفنیم صداقتی میچیم دیناسون می نیست کاملا درست اگر از منظر دین خدا همان مدود واقعی مطلق و جاودانه هست مدود واقعی هست پس او خود هم صادق هم مصر صدقه خب اگر چنین هست پس تکلیب بشر چیست ما گفتیم معرفته بر واقعیت منشه صدقه خب بشر از طریق حواس پنجگانه که محسوسات و مادیات رو درک میکنه واقعیت رو درک می‌کنه. خب، خدا رو از طریق محسوسات که نمیتونه درک کنه، این واژه و مسلمه خود دین ما قراره میگه که خدا از طریق محسوسات زنی نیست. حالا همینه که میگه خدا از طریق ذهن و زنجرایی درک شده نیست. برای اینکه تمام محسوسات می‌داره کارخانه ذهن درک میشه. واقعیت نهایی هر چیزی در ذهن درک میشه. ذهن کارخانه دریافت محسوسات برمی خدا در ذهن درست به تصفیص نیست در در ذهن فقط عدمه که درک میشه آن خدای زهنی این عدمه خدای زهنی خداییست که وجود نداره فقط یه ایده محس ایدهی که این عدمه اون عدم رو انسان خدا بوداشته بله بشر در تجربه تاریخیش به این اجزی رسید که اگر بخواد صادق باشه بهتره که اصلا ممکر خدا باشه اگر بشر امروز و این چند قرن اخیر به سمت کار خدا رفت برای این بود که بتونه تر باشه چرا برای اینکه به زجر افتاده بود در تنان قضا دیگه برای خودش درست کرده چرا برای اینکه میخواست آن موجودی را که اسمش خداست که باسته محسوسات درک نمیشه رو بگه این واقعیت برحق همینه و بعد نتونست ارتباط و اتصالی به این واقعیت برحق قیبی پیدا کنه لذا با مادیات در تضاد, تضاد معنا؟ تضاد بین دین دنیا و اون همه ودبختی ها، تضادت ها، تراغوز ها و اون همه جنایت ها در تجربه قرون وستا در تجربه همه مذاب اطلاق افتاد این که همه مذاب نهایتاً به سمت کف رفتن پیروان مذاهب خاطر زجی بود که در قدم رو به سرق کشیدن و دیدن که تاتق بودن طبق آن تعلیف مطلقاً محال برای همونه مثلا کسی مثل این چه میگه که برای و برای اخ حکم نهایی خودمون رو نابود کنیم، تا همانیم، صادق باشیم و دینی و پریسکار باشیم، اینه. ولی از یه راست کامیدان نظر منطقی دوست داریم که کیشیش‌ها و روحانیت مذاهب ناروشون نشو تا حکم نهایی فذ کنند. حکم نهایی بود که قوانین‌ها، ولی راستگاری خود کیشی کرد. خود موسی به فهمید که نیش از یه هواست نه از کار ندارد. میشه اومدیدارد خود سناصی و خدا سناصی و حق سناصی داشت. بنابراین ما در واقع وقتی از صدق و کهز می صحبت کنیم در واقع از ما دو معنا بحثی صحبت کنیم خب، ماده چیزی که محسوس بشر درک میکنیم. من خودکار رو میکنم می این خودکاری وجود واقعی داریم بعد این ادراکی صادقانه خب، حالا معنا، معنا چیزی که ببینیم صحبت به سر زیدکت و سرق در واقع صحبت به سر ما دو معناست معنا نهایتش مطرحه خود خداست قابلمون میشه فیزیکه ماده محسوسات محسوساته مادیات خب برای ما دادن دیگه قلم روی معانی قلم روی دروغ باشه بر اساس محسوسات جهان معانی جهان دروغه چون انسان هم با معنا میخواد زندگی کنه هم با ماده در تناقض بین راست و دروغ سرگردان و تهیج میره و مستغرف میشه حالا همین دیگه بشه امروز گرایی رو بوسوش کنار به تجربه بشتر امروز روز وارس تاریخ و گذشتگاه بوده به تجربه فهمید که آقا بهتر دست از معنا دست از متاویزیک دست از خدا و به همین ماده ای مرس قناعت کنه این همون کفره یه کفر صادقان است کفر مناطقان است ما باید این کفر رو درد کنیم که را به سمت کفر آ... کاملا عمدی و آگاهانه میره و کفر رو داره انتخاب بکن بخاطر همین تناغذ. که و این اساس در رو اخلاق و ارزش‌های های منوی پدید آمد و بشر های دیداری دید میشه در و از از دستکش تحسیم گرفت که کافر کافر بشه حرف خدا رو همون نزنید حرف معنا و متافیزی رو همون نزنید آدم قیب و اینها رو اصلا ببوسه بذاره کرد خب این یک واقعید که مطلب دیگر اینه که خواه ناخد. الآرم چنین تلاشهای که بشر دستو تاریخ کرده و امروزه که دیده خدا رو منشء دروغ پنداشته و خیلی از فلاصفه اخیر گفتن که دروغی بزرگتر از خدا نیست و انکه اکثریت مردمان مذهبی و خداجو هستند قلتش اینه که مردمان فقط های بزرگ رو دوست دارن و خدا بزرگترین دروغه و منش هر دروغ خداست ما بس بفهمیم این کجا باکن چرا بشر میشه ما میدانیم که همین بشر کافری که خدا رو بوسید گذاشته کنار یعنی دروغ رو گذاشتهکنلار میخواد راست و ساج و بیریا باشه یعنی ماتریالیست و در فقط باشه فقط میخواد تن رو قبول کنه در این حال این بشر نتونست این شک مشکل رو کنه اگر نه اون پایی ها الان یک توقدر بودیم با اصلی واقعا در خوشبختی یه محرح می بودن و یک زندگی سرستی رو بهجا میگردن آیا چنین شد نشد پس دیدیم این خدا رو بسیدن و گذاشتن کنار یعنی دین و معنی و منعگذ کنار گذاشتن اولفا چند قرد این کار گرده او. مشکل اولفایی حد شد نه با همین حال میبینیم که در همین ده های اخیر خدا و خداگرایی و معنی و یک بار دیگر در خود در قلب اولفا و آمریکا گوج گرفته پس اون مشکل رو نکردنی خدا رو طلاق دادن مشکل رو کنه و اگر نه چرا دومسته به باز کردن کردن گرایشات جدید مذهبی و دینی و در غرب الان خیلی شدیدتر از شرفی اونات واقعا بیشتر احساس نیاز بودن. به میزانی که رو انتخاب کردن و تجربه کردن دیدن که نمیشه کافر بود نمیشه کافر در همزندگی مادی نمیشه کافر این انسان در تجربه می کنه که آقا جون نمیتونه به ماد که مادی باشه ولی نه تمانست. ببین خود معناگرایی، متافیزیک‌گرایی، غیرگرایی، نهایت خداگرایی درسته که انبیای لاین آوردن ولی انبیا که از آسمان پایین نیومادن چه؟ انبیا هم افرادی بودن مثل همین انا بشر و مستکم خود قرآن میگه میگه پیغمبرانم بشر مثل شما بودن، همین شما بودن، در واقع میشه گفتش که انبیاء الهی جدیترین انسان ها بودند که خواستن انسان رو بفهمند و مشکلش رو در جهان متحل کنند. کند بنابراین معناگرایی مذهب از آسمان پایی نا از ذات انسان برون آمده از ذات انسان برون آمده این نیاز ذاتی انسان بوده معناگرایی انسان نتونست به خودی خود تن خود و برای خود کافی بدونه انسان نتونست به خودی خود ماده جهان رو برای خود کافی بدونه معناگرایی ذاتی انسانه قیدگرایی و خداگرایی ذاتی انسانه برای همینه خدا به عنوان یک کشف عالیترین و ذاتیترین کشف انسان بوده که اندی او را کشف کرد. انبیا در واقع میشون کاشی با خدا بوده خدا به مفهوم معنای مطلق و ناپترین معانی مسابقه بزرگترین و ذاتیترین کشف بشر بوده بنابراین به عنوان محقق به عنوان عالم و به عنوان متفکر انبیای الهی انیخترین و نخستین کاشفان و علما بودن معناجویان بود. که خدا رو بایدن کشف کرد این واضح این نیاد ذاتی انسان بود بشر امروز ما امروز بهتر میتونیم انبیا الهی رو درک کنیم و میزانی که که تصمیم گیره کافر بشه فقط به ماده قناعت کنه، تازه دوام بیفتد. انسان بیار چی بودم واقعی، چه کردند، چه کش میکردند، چه گونه ظاهر رو از خود استخراج کرد پس انسان نمیتوانه ماده فرات باشه سعی کرد در ماده پرستی یک دست بشه. آدیا لازم یک دست شدن آدیا لازم نیست گانی ظاهر شدن. باید دیگه این سریف دیگر استد کرد. میگی فلان یادم یه ظاهر بسیاریکی یکی نه؟ سعی کرد که با انکار معنا و معنویات و قیب و متافیزیک اینجوری دوری سعی کنستاده باشه این هم نتونست اینجوری دیوونه شد به خودکشی افتاد چرا این غرم در خودکوشی ها و جنون های اپیدمی که ها؟ تلاش بشر برای انکار معنا و ماتر شدن محس بشتر رو به جنون و جنایت و خودکشی خود خودبرندازی انداخت اگر این معافیتی درش در میمد خب جای تعموز بود. نه تجربه بشر در این زمین ناکام شد. برای همین از بدن اشد کف و مادیگرایی مدل غربی ما نمونه اشد گرایشات مذهبی رو در غرب بیشتر شاهد تا در شرق. البته اینا به تهی کف رسیدن و خواستن کفر رو انتخاب کردن، کفر به عنوان فلسفه زندگی، درصغ تجربه کردن و در اشد این تجربه دو صد چندن به معنا و معنویت پیدا شد. این واقعیتی است دیگر پس اینجا ما فهمیدیم که سقف و کز سرانمروی یک م... م... معرفت علمی و تجربی و محسوس ذات بشری تا چند موضوع متناقض و علی به قول معروف دیالکتیک است. هر از از علیاتی قوستفت دستاخته میشه ما در واقع سقف و در کز میتونیم بشناسیم. و سقف رو از کز میتونیم خلاصی. ماده رو به حس معنا و معنا رو به همه متفکر بشه. نمافهیم ولی اصلا دیگه ریلا نیست بنابراین ما میبینی که مناگرایی هم ریسپکری فیسی بودنی مصدر درست به همین دنید به همین دنید که خدا و خداگرایی هم است بلا همینه که واقعی تقیید خدا و انسان خدا در وجود انسانی که کشف میشه در آسمان کشف در نیست ما در دین اسلام میدونیم که خدا در آسمان نیست خدا در دل شاید دین اسلام و ق هنها کتاب تنها که تو با تنهایی باشه که خدا را در دل و در ذات انسان حاضر میده در آسمان دیگه آدرس نمیده واسه که خدای کافران داروا میگه خدایی که در دور دست است و دورترین دورتر، دورترین جاها آسمان دیگه‌ها آسمان دورسر نداریم کافران میگن خدا بسیار در جای دور است یعنی پشت آسمان است خدای اسلام خدای است همین وجودیست. خدای موجودی خب این مطلب که حس نسان نداره فعلا متوقف میکنیم برمیگردیم به اصل رضیه که گفتیم معرفت بر واقعیت و دخس خوب انسان دو کانون ادراک داره یکی اندیشه است یکی دل حواس و اعضا و جواره ارگانها و افزارهایی هستند که در خدمت دل و ذهن هستند یعنی خود پوست خود چشم به خودی خود برای خودش ادراک مستقل نذاره ما در ولیه رو میگیره تصویر رو حس رو میگیره میفرسته به زن و انسان در اونجا درک خب از دل و زن دو کانون ادراکه از ما دونو کارگاه معرفت برواقعیت دارید یکی ذهن، یکی دل و اینها کاملا متوابط هست خب این واضح از لازه فلسطه علمی و تجربه که محسوسات و مادیات در ذهن درک میشه دهن قلم روی درک دنیا است مادیات دنیا ذهن ذهن کانون درک دنیا است دنیا یعنی نزدیک شده خود الله دنیا در قرآن این نزدیک شده به منای پست شده هم هست پستی و نزدیکی هر توی یه معنی داره و ذهن انسان پستری و نزدیک شده ترین حد واقعی هست رو دریافت می کنه که ولی دل انسان ولی دل انسان قلم روی آخرته قایت ها رو درک میکنه کنه یعنی دوسترین حد رو درک میکنه خب دورترین دوسترین واقعیت ها اللازم محسوسات به نسبت در قیاس محسوسات خداست بلن در دین اسلام و کلا در مذاهب کانون درک خدا و تصدیل خدا قلبه دل دل دوسترس ها رو درک میکنه کنه خب و اون دیگه نشو گفتش که ذهن قلم روی درک ماده است و دل قلم درک معناه است ما نباید سشتباه کنیم ایده ها قدم روی معنویت نیستند دو قبضان ما اشاره کنیم روی و آرشیو مادیات هستند دل که قدم روی معنا و معنویت هستند. برای همینه در قرآن کریم تمام صفات دینی و ایمانی به دل معطوف نیشد علم و معرفت و حکمت که قرآنی تماما جایگاش دل ذهن نیست زن نیست زن جای برداشت و ادراک دنیاست مادیات ولی در این حال این دو ارتباط دارند با هم. نهایتا انسان کامل انسان مبهد با حسیبتونه ذهن و دل رو یکی کنه از رازالله الله معرفت شناسی در خصوص شناسی با است گفتش که قلمرو صدق یعنی تصدیق متقابل ذهن و دل نسبت به هم دیگه یعنی انسان صادق در مفهوم کامل و آرمانیش انسانی است که میتونه دلش میتونه ذهنیتش رو درک کنه و تصدیق کنه ذهنیتش ان میتونه دلش رو بخونه و تصدیق کنه این دو هم دیگه رو صید تصدیق کنند متحد بشن انسان موحد چه انسانی است که بتونه ماده رو این معنا ببینه رو ما دو ببینه ماد دو معنا رو یکی کنه این بیان دیگری از صدق و تصدیق ظاهر و باطن یکی شدن بیانش همینه دیگه ظاهر دنیاست که اینجا زن دریافت میکنه اینجا قدم روی که قرار دریافت میکنه خب بنابراین ظاهر و باطن دنیا اینجا دل باطن دنیا رو دریافت میکنه باطن جهان رو باطن واقعیت رو اینجا ظاهرش رو حالا اگر ذهن و دل فنست همخوانی داشته باشه به میزانی که بتونه به اتحاد برسه و به تایید و تصدیق هم دیگه برسه در واقع انسان به قلمرو استخبارسولی یعنی وحدت و یگانگی ماده و معنا ظاهر و باطن این همون وحدت و یگانگی واقعیت و حقیقت حقیقت به نهار واقعیت واقعیت‌های مادی گفته میشه دیگه حقیقت تناقضی که در فلسفه وجود داره حقیقت واقعیت میگه خب واقعیت صورتی کسی هاست حقیقت آن امر ذاتی و نهفته در درون واقعیت اساسی یعنی غیر واقعیت است، قیبنی یعنی اندرونی دل اندرونی استخراج میکنه، ذهن برون را استخراج میکنه. بنابراین اگر به میزانی که انسان میتونه این اندرونی برون رو در خود یکی کنه، یعنی ذهن و دل رو با هم دیگه یکی کنه این انسان انسانی مبهده و انسانی است صادق که تلتث ظاهر و باطن واقعیت رو یکی کنه خب ببینید یک تحقیق حضرت علی داره در توحید که به نظر من کامل بیان از توحید در تاریخ معرفتی بشری همین سخن علیه از این سخن بختر تا به هرگز کسی من خداوند در باطن هر چیزیست بدون اینکه خود آن چیز باشد. و در بیرون و ظاهر و صورت بیرونی هر چیزی است، بدون این که غیر چیز باشد. ببین؟ باز از اینی که ظاهر و باطن هر چیزی خداست. ظاهر و باطن هر چیزی خداست. تازه برای هم داریم از اصل خداست چیز. و از ظاهر و باطن. از ظاهر و باطن. هست. این ظاهر و باطن هر چیزی خداست. اول و آخر هر چیزی خداست خب. پر به میزانی که ما میتونیم این ظاهر باطن را یکی کنیم در واقع هم واقعیت جهان را شناختیم و این واقعیت جهان رو میبینیم که خود خداست ببینیم این واقعیت جهان این یگانگی این توحید قلم رای که وجود وحدانی پروردگاه میشه ظاهر و جهان خب اگر باصی سولیوی اپستین به ساختن این فضا. اما شما شاید دیدی شومی که از یک بار سازنده تا به سادگی قضیه رو فهم بکنه. چون که در حثرت هم که می‌گی در طول تاریخ بشر تجربه کرد و نتونست ظاهر رو با منطقی بکنه پس برای همه راحت نیست. و ذهن و دل به عنوان دو جایگاه دریافت واقعیت برای بشر نتونست این واقعیت رو مغنوز بکنه که نهایتاً بشر تصمیم گرفت دست از دلش برداره و فقط به ذهنش بپردازه <تصفيق> پس کار سادهی نیست و بشر امروز هم دوچار یک سرگشتی است کامدن واضح اگه طرف به قول شما با ماده خودش به بنبست رسیده دقیقا دقیقا هست که تصمیم گرفته بر اساس ذهنش و بر اساس حواس پنجگانه زندگی بکنه و دیده که کمبود معنا برده و همین منجر به این خودکشی ها و این پوچی ها شده از سوی دیگه نمیخواد گذشته خودش رو تجربه بکنه و خب واقعا این خودش باعث به وجود اومدنه یک دل ویژه شده در جهان وقتی صحبت از دل میکنیم این دل خیلی راحت نیست بعد خب ظاهرانیه که جایگاهی داره در سینه و ظاهرن هم از ظاهرانم از لحاظ آناتومیک قلبی است که می ت از این کارا ولی خب این خیلی نگاه شمایهفر ازدن جوونایی امروز چون نمیخوان مثل گذشتم حداقل جنون گذشته رو خ پیدا کنند یه طرف هم نمیخوان یه آنمایی مااض ماده زنگ رو باشد. این اهل دل باشند کم ها نیستند، تقریبا میشه گفت که یک ما از خودا نیمه قرن بیست رفته رو افتاد میخوان اهل خاله چون طرف اهل دل و لا اقلگری شده دلگرایی مثلا طرف هر آنچه که در ذهن هست عنوان منطق، عنوان حساب، عنوان استثلال، بسید بزرشت کنار اینکه مثل پدرش و یا نمیخواسته پرست باشه میخواسته در به وجودش روح باشه نمیدونم لطیف باشه و این منجر و ون گذشتشم تکرار بکنه این به اینجایی ای رسیده که الان ما جونهای امروز و ما همشون اهل حال شدن اهل حال یعنیچی یعنی آغاجون یعنی نه به ذهن و نه به عقل بپرداز ببین اون داره چی میگه ببین همین الان چی میخوای این میشه اهل دل دل چی میخواد؟ دل من الان میخواد که اینجا مثلا از خودم این حرکتو بکنم. پس این خوبه اهل دل. پس وقتی صحبت از دل میکنیم دل خیلی راحت نیست. اینجا دل حداقل در جهان امروز دل یک معنای عجیب قریبی پیدا کرده. شما میگه دل و ذهن این سخنرانی رو هر گوش کنه میگه آخ من. منم دل و ذهن، هم. مثلاً یکی آقا. برای اینکه همین الان دلم هم میخواد سیب بخورم، اتفاقاً ذهن تایید می‌کنه که سیب بخور. پس من چقدر انسان ساده‌ای هستم. من دیشب در سوابتیم دامادو آزاد داشتیم. این صحبته که هم، که در جهان در کشور آمریکا به از صداقت میاد، از همین دسته. اونا هر آنچه که میل میکنند، یعنی دلشون میخواد، همونجا انجام میدن. و ذهنشون هم با ماله حداقل پراهم کننده آنچه که دلشون میخواد، بهشون یاری میده و اون موسیقی رو مهیج میکنه تا آنچه که دلشون خواسته انجام بشه. پس انسانهای وقتی صحبت از دل میکنیم اینجا بله به نظر میاد هوای نفس و قراریز نفسانی جایگاه دل رو گرفته هرکی که بر اساس هوای نفسش رفتار بکنه بر اساس دلش رفتار کرده و ذهنش هم اگر بخواد کمکش بکنه تا این به واقعیت برسه پس انسان صادقی و اهل دل و اصلا از این صادق سرم نداره اینکه چرا بشر امروز و یا جوون امروز به چنین صداقتی رسیده بله خانسد این بود که نخواست تاریخ گذشته خودش رو تکرار کنه و از سوی دیگه نخواست ماده پرست باشه چون نخواست ماده پرست باشه و نه نه اون تراژدی گذشته تکرار بشه دلی رو برای خودش انتخاب کرده که گویی دلی عجیب غریبی حتی با دلی که شما بیان می که جایگاه خداست خیلی جو هست چون این جوان رو حداقل به خدا نرسونده. اون رو تباخ کرده. ولی هر برای نسل جوان و افرادی مثل من وقتی صحبت از دل میکنیم جز این مفهومی نداره. من میگم خب دلم کجاست؟ دلم اینه که من الان چی دلم میخواد؟ خب عقل من به من میگه از لوازه نمیدونم مسائل پزشکی و فلان و فلان شما بهتر قند نخورید ولی دلم من قند رو میخواد. پس اینجا به دو جای بلد. پس من دو جایگاه شما وقتی میگه دو جایگاه بیشتر در درباشی یکی ذهنی که دل خب من ذهنم که کاملا من رو به خاطر همون ذهنگرایی و اطلاعاتی که در ذهن من هست از قند جدا میکنه ولی چیز دیگه‌ای در من هست که ندامیده خب پس اگر دو جایگاه اونجا چیه؟ پس من دل دیگه اسم دیگه‌ای هم داره نه طبیعتا اینطوره خب پس دل من ولی به من میگه که بخور بابا با خیلی خوشمز است پس من برای جایگاه وجودی خودم ذهنم رو خیلی واضح میخونم پس اون جایگاه ها اسمش میشه دل و اینجاست که دل و ذهن من خیلی راحت میتونه یکی بشه و الان آنچه که در جهان امروز هست و های این دور و زمانه اتفاقا بسیار صادقن دلشون میخواد این حرکت رو بکنن و میکنن عمو حرکتی به دراشون اونا رو نه میکنن و اونها با پدرشون به مبارزه برمیخیزن که شما دروغگو هستین و ریاکارین ولی ما صادقیم چون هر انجیری بری مخالف خ منجام بدیم و ما نمیخوایم از حالا اینجور این جور زندگی کنیم پس مزرعه دل مزرعه به همین سادگی نیست که ما بگیم دو جایگاه برعکس هم خواستنم کنه. ظاهرا الان دل جایگاه دیگه پیدا کرده ای پیدا کردی و دیگه جایگاه خدا نیست به عنوان پاکی به اون اسمت چون جوانان رو به سمت فساد دار میگیره مرمو میشم دستن رو توضیح بدید چون موضوعی خیلی اساسی در جامعه ببینید به احسی که کردید این واقعیته ما تا این نفهمیم نخواهمیم ایچی نخواهم این رو میدونیم اینها که اهل فلسفه و حکمت هستند میدونم که در فلسفه‌های های غربی مهمترین و بحث قایی و سردمش ساز هر دستگاه فلسفی میرسه به هستی شناسی یا انتولوژی این مبحث می‌خواد به قلبش خودش برسه تبدیل میشه به معرفت شناسی یا شناخ شناسی این مبحث اون وقت می‌خواد دیگه حرف رو بزنه تبدیل میشه به تئوری حقیقت حقیقت در خود زبان انگلیسی مثلا تروس تئوری آن تروس تروس یعنی راستی در واقع تئوری راستی تیوری صداقت که در راستی چیست این حرف آخری تلاش آخری فلسطفا بوده و تا وقتی نشکر ایش توری حقیقت عملی مستوی ساله در نهی بود نیگلیزم حاصل از فلسطفا این بود که نستند واقعا راستی رو بر اساس واقعیت تعریف کنند تویست یعنی راستی راستی چیست ببین پس کلی فلسطفا علاق من کارش و علاواتش با دین ببین رسید سر دین اصل دین، د در موضوع تهوریه ایتا به این چیزها صداقتیست بستیم <تصفيق> خب من یک مروری می کنم تا ازش این نگاه واضح بشه ولی این موضوع همه به نظر میسته که اهل دل اهل عشق نه؟ تمام این های و ها در ویشی های بازاری همه همین داره در قرض خیلی شدید تره نگاه کنید همین قرضی ها با قلیمه اهل هارتن هارتن از هارت صحبت از دل حتی کاخذ فید موزه خطمشه های اساسی استراتژی خودش خودشو از درو های ف فرده هنری میگیره از هالیوود، بود ارزش در حطاف امپریز و جا مووززه بازه شده. زدان رییسوننگل های هم ناربیشهداردن ترویت میکنن می ببینید اینام ما بازند میچ. خود کشور خود می ببین تا چند دیده میزانه که مردم ما و نظام ما باعلش دینی به بمب رسیدند، اون هنرمندان مدمدن جای خالی این دین رو پر کنند. می‌دونید؟ هنر قدسی که امروز صحبت میشه این امروز هنرمندان اصلا سیمای قدیس به خودشون گرفتن در نظر مردم قدیسان شدن. اینا رو ما واسه بفهمیم چرا؟ یعنی چی؟ ببین الله فلسفی هم در کار که فقط احساس نکنیم اینا رو مش و نونفن و دوز و قاچاخچی و اینا مدلم نه اشخون مدنی مذهب درست کردن. نه. اونهایی که هیگل رو خوندند میدونن که حرف آخره هیگل مکتب اصادت هنر و هیگل بنیاد نهاد در قایتی پوچی هایی که در دیالکتی خودش حاصل کرد نهایتا هنر رو گذاشت جایی مذهب و قداسد هایدگر هم دریقا همین کار کرد اونها که هایدگر شناسا میدونن؟ میدونن که تنها ازش که هایدگر سونست از بطن این نیهلیزمی که در فلسفش فشاده شد بیاره وسط بگذاره قداست هنر بود قداست هنر ببین پس اینا پیغمبران این عصر هنر پرستی. هنر برای هنر و نهایتا دلگرایی و اهل اشق و حال بودن شد این مختصری اینا هر قدوم بحث بسیار اساسی است ما فقط همین دوید خوندیم که آقا چه شده که چی شده بشر امروز در بیزاری از تجربه قرون وستایی مذهب قرون وستایی اسلام هم قرون داشته همین مذهب خودشون داشتن این اشد در نفاقی که تبدیل به جنون و جنایت شد همه از اونجا نفرد دارن قرون اخیر تصویم بشر بر این شد که کفر رو دیگه پسکنده و رولاست بذاره وسط آقا خدا دین قداست غیب متافیزیک خدا حافظ نمیخوانم آقا همین حیالی اصالت دانش می شود ماتریالیزم ها پراغماتیزم ها, ها،, ها، اصالت ماشین اصالت صورت اصالت صورت و بعد این ده های اخیر این ماتریالیزم ها هم به اون بحث رسیدند. و چی از توش نر مکتب اصالت هنر برای هنر کتاب در فرهنگ همه مرتبه اشق و حال و حال تو بکن <تصفيق> هره این گروه ها و طبقات بشری به اینجا دارم میرسن حتی روحانیت مسیحی و حتی بخشی از روحانیت اسلامی هم ما میبینیم که داره این احلی میشه پس ببینیم این باز بفهمیم که یک واقعیت تاریخی است همه رو دیریازود داری در بر میگیره پس بازی ما بفهمیم این یعنی چی دلگرایی، قلب سال زر بشر ممکن دل بود در ماتریالیزم های قومی نخیر دل, دل رو اصلا تحکیل کرد گفت فقط ذهن، یعنی ماده پرستی، دنیا پرستی و این افراد تفریض یه دفعه طبیعت و دلگرایی هیپیزم، هیپیگری یک نظرد جهانی است الان پیر مرده همین در زمانش بیشن ما فکر نکنیم فقط جوان ها نباست مایی کنیم فرهنگی بیگری در خبقات مختلف سنی به شکل های مختلف بروز بذار می کنیم در مثلا یه مقدار سنویفرش در, در, در فرهنگ ارفان بازاری و دریشگری ها که اکثران پیرها ها میرن در این گروه این همونه به مختضات سنی خودش این یک توپیق بوده این ابتال دارای حقیست. حق حق ابطال رو مباستی می‌خوام حق این هم ابطال با جنون چیست حق بشه. اگر ما اهل دینی ما مرواتیم اگر ما میگیم آقا دین در همین دنیا واسطه ایدا بشه خدا در همین جهان واسطه ایدا بشه پس حق در همین باطل واستی فهم بشه تمام بسید در باطل فهم. بس حقیقت حیات شما نمیگیم در واقعیت خب واقعیت جان امروزینه حقیقتش چیه حیاتش واسه چی ما واسه بفهمیم به عنوان مسلمان وظیفه داریم از جبران بشر به سمت دل هول و رانده شد. این واقعیت. ده. منطق بشر این این دل معرفت نه لاره باید معرفت قلبی داشته باشه.